اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به اینستعین و هو خیر و موفق ان شاء انشالله که وجود مقدس پیغمبر عزیزمون وجود مقدس امام صادق علیه السلام و همینطور همه اهل بیت معصومین علیه السلام کمک کار ما باشند در این حوضه میه که هستیم انشالله زحمت بکشیم و علم چسب کنیم تقوی کسب کنیم عملا و به درد دین بخوریم به درد حوزه بخوریم به درد اسلام و مسلمین و به درد بشریت الله بخوریم یک سلواتی بفرستیم با هم دیگه الله مساله نمیدونم نادم. بس اصلا چیزی از بس توزه هست یا نه بس ما در مورد سیره است سیره گفتیم میاد وچون رو به ما میده گذاشت یه سری سیره هم داریم که موضوع برای ما میسازد موضوع میسازد این مرتبط به موضوع یه سری سیره هم داریم که خودش اصلا موضوع حکمه این هم یه مدلله. یه سری سیره هم داریم که موضوع رو برای ما چشم میکنه. این ستا رو گفتن سیره های مرتبط به موضوع. بعد ما در مورد سیرههایی که موضوع رو می تمام موضوع رو میسازن تمام موضوع رو میسازن الان داریم چند روزی بحث میکنیم توش بحثای متفرقه هم اومده میشد این بحثا رو جداگانه در باب مستقل اومد گوتا کتاب در زیل همین بحث اومده خب اینجا رو ببینیم سیرهایی که مرتبط به موضوع بچم شرعی سه جونه خود سیره موضوع بشه بچمست یا سیره محدد موضوع است یا سیره کاشف از موضوع است خب این سطح رو داشتیم حالا این نوع اول و نوع ثانی مربوط به این شمالی دو میشه یعنی سیره محدد موضوع خب نوع اولش محقق و مندقه تمام اول موضوع هست با سایتا مثال دردیم دمار و قمار نباس مختص مثال به عرض راهش بعد زماهش ببینید تو بحث مثال زماه ما چند تا بحث پشتره هم پیش اومد بحث که جلسه قبل تموم شد و یه بحث دیگری جلسه قبل شروع شد بگیریتون آقاون که وقت چنده یه مسئله جلسه قبل بهتور از شد اگر سیره ای زائل بشه و آیا هرکم باقی میماند یا خیلی اگر سیره ای زائل شد هرکم باقی میماند یا خیر؟ خب شما این مثالهایی که دیدو زدیم که رسات قبل زدیم اینها رو در نظر بگیریم اگر آلت و یک چیزی آلت و است این مسئله چی داریم میگیم از اون سمه شروع میشه از اون سمه اس چه حالشیه؟ توضیح بگید یک مسئله اگر سیری زائل بشه، تو همین بحث خودمون ها که سیره محقق تمام امور هست. اگر سیره زائل بشه می چی میشه؟ ما دونه دونه برداشت کنیم. حالت الكمال فرض کنید یه شیئی در زمان پیامبر حالت الكمال بود، مثل شطرنج. اما این سیره زائل شد. الان دیگه حالت نیست. پس میماند یا مینرسه؟ الان الان الان دیگه دا. اون زمان چه بود موضوع بود حج میشه؟ بود. الان چی؟ نه دیگه دیگه نمیشه دیگه. الان حج نیست میتونید بگید چرا چون بگید. چرا حاج میره چون جز هم دست از بسیره منبه موضوع همه منبه موضوع هست همه این مثال ها منبه موضوع خوش اونچه همین پرسیدی میدونم چرا سیره این رو چه آلتالقمار نمیدونه الان قدیمه آلتالقمار بود حجمش چرا نیست؟ چون, چون موضوع میپره دیگه موضوع نیست موضوع, چرا نس... موضوع نسبت به حجم یه حالت اندیت داره وقتی موضوع نیست انگار علت نیست علت که نباشه معلولاً نمیاد حجم نمیاد پس ما در مورد آلتالقمار میگیم اگر سیره در گذشته بود الان نیست ببونیم که واقعی نمیمانه حالا تا ما گفتیم لباس مختصم یه زمانی که بما لباس لباسم به بود الان به گفار نیست دیگه الان خود مختصمان بیشتر است قربی ها کلوات میزنند اما زمان رو بیمان میزنند الان چشمدش عربی این را میزنند عصف مختصمان ها این کام رو شد دیگه مختصم گفار نیست خب خود روزایی میشه این الان دیگه این به نباس مختص سرد جاشه ها ولی این مورد چون سیره بر دیگه از بین رفت بچمش میپره ارز راهش هم همیتون اگر ارز راهش مالیات دارد یه زمانی اسکیناس های شاهی مالیات داشت الان دیگه سیره برطرف شده دیگه اون اسکیناس شاهی ارزشی نداره. فقط از خوشم چوزهای تقریبی و حتی رضا توییم ها اونا دیگه نیست و از قسم خود ذاتن سیره بر مالیاتش باشه دیگر نیست خوبتی نیست پرش بشه هرش هم نیست این دیگه مالیت ندار شما نمیشون به عنوان یک چیزی که مالیات دارد بشه هست پیس حالا بیرم شما به زر آخر اگر لحظی در زمان موضوع قرآن بر معنای سیره داشتیم فرض کنید فرض کنید در زمان دوزول قرآن امر تقیید کنید مثال خوبیه این رو امر ظهور در ندر داشته سیره امر ظهور در استحباب داشته الان این ظهور در استحبابش دیگه رفت یعنی سیره زاید شد طبق سیره اون زمان مثلا هملو بر استحباب می یا مثلا هملو بر وجود می شود فرق نداره اون به سالشتی محمد زمان. در اون زمان هرچی بوده الان برطرف شد الان دیگه ظهور سیغه امر در اون نیست عوض شد خب آیا اینو ظهور علی ما را دارد یا ندارد یا اینو به عبارت بهتر بزدیم رو اگر ظهور لفظی در معنایی در زمان صدور خطاب بوده این ظهور لفظی نیست یعنی دیگه ولی اکنون آن سیره ظاهر شده یعنی ظهور در آن معنا ندارد بلکه زبور در معنی جدید دارد خب لفظی در زمان نزول زهور زبور در معنی علف داشت بعدن زهایه شده الان زبور در معنی شمالی بی داره علف و بی خب شاره هم حوششی بود که زهای حب جدان مثال ما بود دیگه. از ظاهرها است. خب الان ظهور این لفظ در این معنای جدید که الان سیره شده هنوز حجت هست یا یعنی؟ نه مثلا همون مثلا کمس کرد ظاهر سیره عمیش در زمان موضوع قرآن سیره برای بودی که دورت و بوجود باشه حالا بوجود بگیم که که مثلا سلا توازه ظهور سیره عمیش در بوجوده الان در اش شده ظهور سیره هم رو در نجده خب الان این استعبال نسبت به قرآن وجده یعنی ما برگردیم و اون آیات رو همه نبرا استعبال کنیم بگیم حالا که عهیم و صلاح و زمان عمله و و در دو جور داشت الان دیگه مصطحف شد. چون سیده عوض شده مثل که به خب ما رو میبهان چطوری؟ چون چند چیز رو میگه چی؟ نمیتونم چند چیز ب زیاد ظاهر با اون سه تا چه که کار فرق میکنه. در ظاهر سیر عوض بیشتره، مادرم رو اونی که الان جاری شده، بدردی جاری شده، نمیتونم حضور کنم. چرا؟ این لذتی نیست. موضوع هچ میزاهر که سیره اون رو برای ما مشخص میکنه. این مقاله به زمان خاصی است. اون مقاله به زمان صدور خطاب یعنی سیره چه که ظهور سازه است در همون زمان صدور خطا حجیت داره سیره عوض بشه دیگه حجیت نمونده اما توی اون مسائل دیگر حالت قوا در زمان خود پیامبر باید حالت ایمان باشه تا همیشه تمام باشه میگیم نه اون موقید به زمان نیست اگر چیزی بعد ها حالت اثبات شده اصلا فرض کنید در زمان کما یه چیزی بوده که آلت ها به بار نخود، این بردها اینقدر که باشه باروازی کردن شد آلات به این برد. اون موقع خرمت میان. زمان میامنه نخود بردن. خرمت میان. زمان میامنه بر آلتها به بار بردن نیست. خورمت میره. میره. چون در اینها موضوع مقعیت به زمان خاص خود تیغمبر نیست. هر زمان این آلات به بار حاسب شد خورمت هست. اما ظهور نهد. نمیگه به قرآن زرایش رو ببینی هر زمان هر ظهوری هاشن چون همون مدید. نمیدیم زهور در زمان صدور خطاب. پس اینو مثال دیم. مثال زباهر قرآن فقط در زمان صدور و نزول قرآن حجته خب یعنی بزرگ ما مپرده به زمان خاصی احس بعد ما خواهدت رو دبار روی خب این رو که گفتین حالا عبارت کتاب رو نگاه کنین عبارت کتاب رو کسیدی توضیح بدیم که عبارت باز باشه براتون از واس خمه نهو همین مزعه شروع میشه گفتم بنمیسی بعد اهوالنفصل اناوین المذکوره عبارت هست اون همون شماره علف اینو اسمشو بزنید علف نفس و موضوع بکنه هست به تو عبارت ببینید امهیم مقیدتون به زمان خاصه جان که موضوع مقیده به زمان است یا حکم مقیده به موضوع در زمان است این هم شماره به مثلا موضوع دلیل دال علا حرمت لعب به حالت قمار، اون مثال برای امون الفه که مقید به زمان خاصی نیست تا میاد پایین و آزا به خلاف دلیل دال علا حجیت ظهور الخطابه اینم مثال بیه هست که موضوع ما مقید به زمان خاصی است خب حالا در مورد همین ظهور اگر ببینید سال من. اگر وجیت ظهور منوت به زمان صدور پس وجیت ظهور منوت به زمان صدور اختار یعنی ظهور من یعنیشم مینویسم یعنی ظهور می یعنی در زمان سدور حجت است فقط خوب مسئله سه صورت پیدا میکن یک دو و سه سورت اول این جاست عبارتش این جاست. میگیم که و علیه از این جا رو دارم میگم که به وقت ما برسیم چون وسط بست هم شد فعل علمنا به معاصرت ها له صورت اول ارب به معاصرت سیره با زمان داری قلبه به معاصلت سیره با زمانه داریم این حقیقی یعنی ظهوری چه الان برای فلالف رست این ظهور در هم زمانه سدور هم همین بوده معاصلت یعنی سیره دارید. سیره داریم به اینکه مثلا سیده ار ظهور در وجود داره الان این مواسعه را صدورت تا من همین بوده یعنی ظهوری برای نفس هست در زمان صدور هم همان بوده است. خیلی خوب در این صورت چی میشه؟ چرا؟ چون این چه ظهور لفظ ظهور لفظ به زمان خاصیست در همه زمان صدور سیره رو میکنم برا نقیه سیره در زمه زمان صدور بوده پس با دیگه خیلی به اینه من یه لفظی اگه تارداریم چی که متوجه این دیگه آسان. اگر یه لفظی رو الان ظهور در هر مهمه داره میدونیم برآن هم همین بوده با بو بچه دید همون من را به این بروش کنید اول در شده که این مدفل روشن این عبارت همون وعلیه فا این علمنا به معاصرت ها له بدانیم به معاصرت سیره با زمان صدور فلا اشکال افیاجت ظهور از منقه الان ظاوه سیره اینجا در پرتو سیره ما ظهور رو روشن شد برامون و مشکل نده و این علمنا این علمه علم به چی داریم؟ علمه چی رو؟ چی عدم معاصلت داریم علمه به عدم معاصلت یعنی می‌بینیم این سیده‌ی که الان داده بر وجوه این بهدن ایجاد شده فلان موقع به یه خاصی این دردن جا قرم هفته شده در زمان موزون در قرآن نه با معروب دیگه مثل ظهور در مورد قرآن هجه نیست علم بعدم داریم و این علمنا به تخخل ها انهو یعنی عدم محاصرت فلا اشکالا فی عدم حجیت حاضر ظهور و اماعظه این اماعظه رو بیاییم اونم شماره سی هفت علم به اصلا جا علم ندیم که علم به معاصرت سیره با زمان صدور نداریم. علم به معاصرت سیر با زمان صدور نداریم. بلکه احتمال می دهیم. این وسیله احتمال می دهیم که فیلی زیره چه داریم در زمان صدور هم بوده یعنی شک اینجا خب من رو گیا کنیم مسئله قشن جا میبته براتون ببینید من میام لفظ خاصی رو ظهورش رو بررسیم کنیم میبینم الان این لفظ به یه معنایست. مثلاً کلمه ضربه همه یعنی زدن. خب یقین داری این ظهور زمان قرآن هم بود که حجت هست. تو قرآن به همین معنی زدن بگیر بروچه. یقین داری که این معنا بعدن شده. در زمان قرآن نبوده خب پس اون حجت نیست. تو قرآن حق نداری زرب رو به معنی زدن بگیری. سورت ثبوت کلمه. چه من میدونم الان زدن منای زرب اما آیا در زمان قرآن هم بوده یا نه این خیلی مهمه خیلی از الفاظ قرآن این شکلی شاید باشه برای من الحمدلله حمد الان میدونم به منای ستایش ولی در زمان قرآن هم ستایش بوده نمیدونم مثلا نعبدو اما تو خیلی از اینا حل ده ها خیلی از اینا حل ده. شاید مواردش درصد بگیریم چه درصدش پایین باشه ولی خب بالاخره بوره داشت چم هم نیست دیگه حالا مثلا نعبدو الان یعنی عبادت کردن در زمان قرانم بوده یا نه اگر نمیدانیم این هم صورت خطا خب بگیم الان بیرو با سیره توضیح الان سیره برین داریم که این کلمه عبده عبودو به معنی عبادت کردن است در زمان قرآن نمی دونم این سیره بوده یا نه که ظهور بسازه شاید بوده شاید بعدن اینجا شده خب اینجا چه کنید؟ این مورد شکه بریم ببینیم کتاب چی میگه اگر میخواد بیشتر مطالعه کنید به شهید سر رو این بحث ها مراجعه کنید شده و اما ازا احرزنا سبوت عبارت رو ببینید احراز کردیم ثبوت سیره ای را در عصر خودمان و البته فقط ظهور نیست تا میتونید مثال های دیگه بزنید مثلا یک بازی هست بازی هست الان یقینا قمار من نمیدونم زمان پیامبر هم آیا این حالت القمار بوده یا نه متها اینجا مسئله حلده اینجا همونطور که توضیح دادیم مسئله حله. پس سیده هایی که الان برای ما نیست، ولی در گذشته مشکوچ بوده اینا میتونید مثال بزنید حالا همین آلت و رو, رو حل کنید بعد تو زباهر یه لحظه من ببینید من الان یقین دارم این بازی آلت قیمار هست مثلا پاسور ولی در زمان پیامبر من نمیدونم آیا آلت القمار بوده یا نه خب این چی میشه مثلا شک داره اینجا مهم نیست علتش نه که این موضوع جزو موضوعی علفه اینجا به ما گفتن هر موقعی این عنوان حاصل شد حکم میاد اون به زمان پیغمبر خیلی مرتبط نیست به خاطر گفتم گفتم اگر در زمان پیغمبر یک موضوعی نبوده بعدها ایجاد شد و آلت القمار شد حکم میاد زواهر هست که جزید. از این به هست و تاریخ داره زواهر باید زمان صدور خطاب باشه این مشکل پیش میاد بسیار خوب به خاطر این مثال ما همش تو زواهر خواهد بود ببینید عبارت رو و اما ازا احرزنا ثبوت سیرت فی نام ثبوت سیره در ظهور دیگه چه به بحث ما رفت بدا و احتملنا معاصرتها معاصرت تحابه مفعوله برای احتمال. احتمال دادیم محاصرت این سیره بر ظهور را با زمان صدور خطاب خیلی خود و نرقاولو بسی خوده صلو و رو یه ذره سخته خیلی باید دقیق کنیم فیونک نرقاولو به حجیت ظهور منقه به ها اگر مشکوچ بود که این ظهور در زمان خود قرآنم هم همین بوده یا نه میگه احتمال این هست یوم کنو احتمالش هست که بتوانیم تایل بشویم به حجیت این ظهوری که با سیره فعلی منقع شده محقق شده ببینید منو یه ذر روش بحث کنیم سیره الان داریم فعلا بر این که فلان لفظ در فلان معناست ظهورش در فولان معناست نمیدونیم زمان خود قرآن هم همین بوده یا نه فرض کنید، الان میدونیم که لفظ صلات به معنی نمازه ولی شک داریم در زمان نزول قرآن هم به معنی نماز بوده یا نه هم به معنی دعا بوده میگه که شک داریم اگر می دانستیم زمان قرآن به معنی صلاته و راحت ظهور حجه بودیم اما حالا که شک داریم میگه که میتونیم بگیم همین سری الان پرفکت چه داشتیم برای جهزه ظهورش در نماز است اینو در قران حجت بدانیم میتونید بگید رو چه حسابی صح. یعنی حافظ ها من یقین دارم الان صلات به معنی نماز است در مورد در زمان قران شک دارم میگه ابن دل همون زمان قران هم به معنی صلات بگیره ظهور الان برای اون حجت میشه. بگیم چطور؟ میتونید بگیم روچه حسابی؟ آنها رو هست عدم بگیم. نمید یک لفظ به یک معنی که جدید نظام به یک معنی از معناش خمیلی. آها آه. ببینیم. این یک مطلبی رو زمینه میکنیم. میاریم پاشا وسط. کمک میکنه تا این سیله و این ظهور رو در زمان قرآن هم بتونیم بیچشیم عقب الان این زمان نزول قرآن این زمان میاد اینم الان ما در زمان الان میدونیم که فلان لفظ ظهور در فلان معنا دارن به درد مکرر قرآن نمیخونم که باید در زمان نزول قرآن هر چیزی اونو بفرمم خب میگه شما میتونید این سیره که الان داریم رو عقب ببرید عقب ببرید عقب ببرید زمان خود نزول قرآن رو هم عقب ببرید چطور میگه ببین یه اصلی داریم اصل عدم نقد اونا چه اثر عدم نقد رو میپذیرن طول هارو میگم بگم الان لحظ ظهور در این معنای اگر عقب برگره این عقب برگره فرس کنیم بگید اینجا این سیره ایجاد شده ضرور عوض شده این نشان می‌دهد که این لفظ در زمان قرآن یک معنای داشته اومده و در این نسط نب شده به منایی جدیلی که انام داره خب اصبرتر به لفظ که ها رو کنیم یکه همشین اتفاقی نیم افتاده پس الان هرچی پس نیادت رو از پر انا پر انا پر ا زمان سودور او آن را شامل می‌شاعرد. پس این اصل عدمنا نمی‌آید اینجا به درنخورد. البته اگر قائل بهش باشی، ببینیم. و هم ما از آغازان سبب سیرت فی اسرنا، یعنی می‌بینیم که ظهور لفظی در یک معنایش وحتما ما مواصله تا، یعنی علم به تحققش در زمان سودور و یا علم به عدم تحقق نداریم، مثلا علم داریم. احتمال دادیم معاصرت این سیره با اون زمان صدور را فیوم که به حجیت ظهور ال منن ظهوری که محقق به سیره شده است ظهور محقق به سیره الان یقین یعنی داریم بناهم الا ادراج هاذ از ظهور بنابراین این که این ظهوری که الان داریم را بتونیم درج کنیم قرار بدیم تحت کبرا تحت یه کبرایی که الان گفتیم آیه از خریم گفت تحت کبرا از خریب خودت رسید یا از کتاب دیدی؟ خوبه اگر از کتاب دیدی نشون میده که برداشتت از مرز خوبه خیلی خوبه اگر از خودت گفتی نشون میده که زهنت خیلی ترین تحت کبرا اصالت ادم نقلف لغم ازگری خوشت اومد حسودید شد شد اصالت عدم نقل در لغت یعنی همه چیز توضیح دادم یعنی یه الان معنایی که برای یک لفت هست این همین بوده نقلی نشده از قبل همین بوده البته بتونید به این عصد قایل بشید به ان یقال حالا توضیح میده به ان المراد به اصالت عدم نقل یعنی مراده به اصالت عدم نقل هو عدم نقل مطلق ظهور نوعی لل حالا من نگاه کنید اینجا یه زده برست فنده میشه اسالت ادم نقل دو تا مبنا در توضیحش هست ببینید منو همین بگیرید نظرد برگاه اسالت ادم نقل یه مبنای، است ها بعض قائره بعضی توئیلیسا حالا اونایی که اصالت از اد، عدم نقل رو پذیرفتن دو تا توجی دو تا مبنا در توضیحش هست بعضیا میگن یعنی یک لفظی ظهور در معنا داره هر جور شد هر جور شد اون ظهور عوض نشده نقل پیدا نکرده این ظهور چه حاصل از خود معنای لغت باشه چه حاصل از قرائل باشه اما مقنه دوخون در پوزه این اصمه ای که نه و سالت عدم نقر رو هم اگر میپذیریم یعنی معنای لغت عوض نشده قرائل رو چه دینه میشه که گفت قرائل شاید عوض میشه حالا یکی از اون قرائل همین است. یا تو رو گفتیم سیره مثل یه قرینه متصله از قرینه روپیه متصله؟ چون مردم از این لفظ این رو میفهمن پس من این سیره رو ببینم منم باید همون رو بفهمم چون این قرینه است دیگه حالا اصالت عدم نقل با این توضیح اگر قائل به این بشیم که اصافه شما باید بتونید جواب برید جواب برید که بفهمم که اگر من طایل به اصالت عدم نروش شدم به این معنی که یه معنیی که الان داره حالا چه حاصل از معنی روغمش چه حاصل از قرائله این عوض نمی شدند این نقل نیافت است همین رو بگیر بلقه زمان بلان هم شامل خب در این صورت به درد این بحث همان می کنم که سیله باعث درور شده بود به درد یا نه؟ یعنی تبقیه این توضیحات حاسو خیلی فعالی که درد داشتیم که میگیم آقا الان سیره و زهور این معنا داریم در زمان قرآن شک نداریم میتونیم اینو تا زمان قرآن برگردونیم؟ یا نه؟ با این اصلا تردن تو گفتم با این معنام میتونیم برگردونیم یا نه؟ آره چون میگه که آقا این زهورش در الان به خاطر سیره است و این سیره اگر الان هست نه رو پیدا نکرده همین در گذشته همین بوده اما اگر بردان اقوم باشه که بگیم نه معناه لغت نقل پیدا نمیکنه. کنه سیره می رو چرا ممکن عوض در حصول الان سیره برای یک معنای داریم دیگه نمیتونیم این دو تا زمان گذشته برگردیم چون سیره ممکن عوض بشه. سیره ممکن نه پیدا کنه اون اصالت عدم نهب میگفت لغت عوض نمیشه نه چه سیده عوض نشه اما میخونم اینجا رو این آخر شب بانگو غالم المراده به اصالت عدم نه هو عدم و نقل مطلق ظهور نوعیل کلا سوال اکان علا اساس الگت لغمیه یا قرینه نوعیه متزله لفظیتن کانتون قرینه یا لبیتن مثل سیره چه هم محل بحث ماست بله نه بنوئن اختصاص اصالت عدم نقد بالمقلول لغوی مبنا دوم اون موقع دیگه لاوجیت لحاظ از خود نیست ل عدم احراز معاصرت چون لغت لغت ما اگر مبنا باشه که لغت نرو نمیشه ولی سیره ممکنه نقد بشه اون موقع دیگه اون عدم نقد رو سیره رو نمیشه خبر غیرتون احراز نمیشود معاصرت با اون زمان صدور خیلی خب تا اینجا حالا بقیهش فردا شما روشندتر این شما لرمی کنم سلام آقای شما سید چی فرمونده هایی از خدم؟ روزبای شما قرده نوعی اصلا اون لبزیه شما شما قصد هر شد منظر که اون لبیه شما از رو قبلا گفتیم لوبیا رو, رو چون قبلا گفتیم گفتیم سیره چه ظهور میسازه این یک قرینه لوبیا است چرا لبیه است؟ چون هلان شما مثلا سیره هم زهور در وجود داره مثلا، سیره کارو کرده و لفظی هم میسی که نقبیه دیگه آه. لفظ سیره چه لفظ نیست ما در مورد لفظ صحبت میکنیم که سیره پشت با نشه. لفظ مثلا همون مثال لابعه آه. مثال زن لابعه لفظ ماست ولی چرا لابعه به تنهایی دلالت بر انتفاع بین کرد اما به زمینه سیره دلالت بر انتفاع لزومش میکرد نه انتفاع چون سیره قرینه میشد دیگه اگر این قرینه نبود خود لفظ انتفاع بین رو میگود این چون قربان گفته بودیم تو باید خیلی توضیح ندنم. پس سیره قرینه لبیه متصله به لفظه اینا رو کار کردید اصافا اینا سخت هم هست مطلب زیاد هم هست ما همچه دیگه نخوندیم چی نزده نهانه باید بید